مصنوی معنوی مولوی برنامه دوازدهم. هم مزرعت تعظیم خلق و انگشت نمای شدن تن قفص شکل است تن شد خارجان در فریب داخلان و خارجان اینش گوید من شوم همراز تو وانش گوید نی منم انباز تو اینش گوید نیست چون تو در وجود در جمال و فضل و در احسان و جود آنش گوید هر دو عالم آن توست جمله جانها من تو فیل جان توست او چو بیند خلق را سرمست خیش از تکبر می رود از دست خیش او نداند که هزاران را چو او دیو افگند است اندر آب جو. لطف و سالوس جهان خوش لقمه است. کمترش خور کن پر آتش لقمه است. آتشش پنهان و زوقش آشکار دود او ظاهر شود پایان کار. تو مگو آن مده را من کی خورم از تمام می گوید میبرم. پی می برم مادهت گر هجو گوید بر ملا. روزها سوزد دلت زن سوزها گرچی دانی کوز هرمان گفت آن کانتمه که داشت از تو شد زیان آن اثر می در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک ننماید چشیرین است مد بد نماید زن که تل خفتاد قده. همچون مطبوخ است و هبکان را خوری تا بدیر شورش و رنج اندری ورخوری حلوا بود زوقش دمه این اثر چون آن نمی پاید همه چون نمی پاید همه پاید نهان هر زده را تو به ضد او بدان چون شکر پاید همه تاثیر او بعد این دو ملارت نیش جو نفس از بس مدها ها شد کن نفس هاونن لا تسود تا توانی بندش او سلطان مباش، زخمکش چون گوی شو چوگان مباش. ورنه چون لطفت نماند وین جمال از تو آید آن حریفان را ملال آن جماعت که همه دادند ریو چون ببینندت بگویندت که دیو جمله گویندت چو بینندت بدر مرده از گور خود برکرد سر همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس در دامش کنند. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگاید از تفتیش او. دیو سوی آدمی شد بحر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. تا تو بودی آدمی، دیو از پایت می دوید و می چشانید او میت چون شدی در خوی دیوی استوار می گریزد از تو دیو نابکار آنکه اندر دامنت آویخت او چون چونین گشتی ز تو بگریخت او تفسیر ماشاءالله و کانه این همه گفتیم لیکن در بسیج به انایات خدا هیچیم هیچ به انایات حق و خاصان حق گرملک باشد سیاه هستش ورق ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس عیب ما پوشیده ای قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند پیش از آن کین باد ها نشفش کنند گرچه چون نشفش کند تو قادری کش از ایشان واسطانی واخری قطره ای کو در هوا شد یا کریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت گر آید در ادم یا صد ادم چون بخانی شو کند از سر قدم صد هزاران زد زد را می کشد بازشان حکم تو بیرون می کشد. از ادم ها سوی هستی هر زمان هست یا رب کاروان در کاروان خاصه هر شب جمله افکار و عقول نیست گردد غرق در بحر نغول باز وقت صبح ان اللهیان برزنند از بر سر چون ماهیان در خزانان صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ زاخ پوشیده سیه چون نوههگر در گلستان نوه کرده بر خزر باز فرمان آید از سالار ده مر ادم را ک چه خوردی باز ده آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه از نبات و دارو و برگ و گیاه ای برادر عقل یکدم با خداور دم بدم در تو خزان است و بهار باغ دل را سبز و تر و تازه بین پرز غنچه ورد و سرو و یاسمین زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ این سخنهایی که از عقل کل است بوی آن گلزار و سر و سنبول است بوی گل دیدی که آنجا گل نبود جوش مل دیدی که آنجا مل نبود بو قلاوز است و رهبر مرترا میورد تا خلد و کوسر مرترا بو دوای چشم باشد نور ساز شد زبوی دیده یعقوب باز بوی بد مردیده را تاری کند بوی یوسف دیده را یاری کند تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچو او با گریه و آشوب باش بشنوین پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی نازرا روی بباید همچو برد چون نداری گرد بدخویی مگرد زشت باشد روی نازیبا و ناز سخت باشد چشم نابینا و درد پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آه یعقوبی مکن معنی مردن زتوتی بود نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز تا دم عیسی تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخنده کند از بهاران کی شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمان خاک باش داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنهو از بحر خدا روز بینبایی چنگ زد میان گورستان آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطرب باکر و فر بلبل از آواز او بیخوت شدی. یک طرب ز آواز او بیخود شدی یکطرب زاواز خوبش سد شدی مجلس و مجمع دمش آراستی و نوای او قیامت خواستی همچو اسرافیل کاوازش بفن مردگان را جان درآرد در بدن یا رسیله بود اسرافیل را که سماعش پربرستی فیل را سازد اسرافیل روز ناله را جان دهد پوسیده صد ساله را انبیا را در درون هم نغمه هاست طالبان را زان حیات بی بهاست نشنود آن نغمه ها را گوش حس کس ها گوش حس باشد نجس نشنود نغمی پری را آدمی کو زسرار پریان عجمی گرچه هم نغمی پری زین عالم است، نغمی دل برتر از هر دو دم است. که پری و آدمی زندانی هند. هر دو در زندان این نادانی هند معشر الجن سوره رحمان بخوان تستته و تنفزو را بازدان نغمه های اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا، هینز لای نفیه سرها برزنید، این خیال و وهم یک سو افگنید، ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد، گر بگویم شمه زن ها جان ها سر برزنند از دخمه ها. گوش را نزدیک کن کن دور نیست لیک نقل آن به تو دستور نیست هین که اسرافیل وقتند اولیا، را آزیشان حیات است و حیا جان هر یک مرده از گورتن بر جهت زاوازشان اندر کفن گوید این آواز زاواها جداست زنده کردن کار آواز خداست ما بمردیم و به کلی کاستیم بانگ حق آمد همه برخاستیم بانگ حق اندر حجاب و بی آن آندهد کوداد مریم را ز جیب ای نیست کرده زیر پست بازگردید از ادم زاواز دوست مطلقان آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو راک به یسمه و به یبسر تویی سر توی چه جای صاحب سر توی چون شودی من کان لله از وله من تو را باشم که کان الله و لا گه توی گویم تو را گاه منم هرچی گویم آفتاب روشنم هر کجا تابم زمشکات دمی حل شد آنجا مشکلات عالمی ظلمت را کافتابش برنداشت از دم ما گردد آن ظلمت چوچاشت آدمی را او به اسما نمود دیگران را زادم اسما می گشود خواه زادم گیر نورش خواه از او خواه از خم گیر می خواه از کدو کین کدو با خم پیوسته است سخت نی تو شادان کدوی نیک بخت گفت تو با من رآنی مصطفی بل یبسر لمن وچی رآ چون چراغ نور شم را کشید هر که دید آن را یقین آن شم دید همچنین تا صد چراغ ار نقل شد دیدن آخر لقای اصل شد خواه از نور پسین بستان تو آن هیچ فرقی نیست خواه از شمدان خواه بین نور از چراغ آخرین خواه بین نورش ز شمع غابرین در بیان این حدیث که انل ربکم فی ایام دهرکم نفحاتن الا فتحه رزوله گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق گوش و دارید این اوقات را در رو باید این چونین نفحات را نفه آمد، مر شما را دید و رفت. هر را که خواست، جان بخشید و رفت. نفه دیگر رسید، آگاه باش. تا از این هم و نمانی خاجتاش. جان ناری یافت از وی انتفا. مرده پوشید از بقای او قبا. تازگی و جنبش توباست این. همچو جنبش های حیوان نیست این. در افتد در زمین و آسمان. زهرههاشان آب گردد در زمان. خود زبیم این دم بی منتها، باز خون، ان یهمل نه ورنه خود اشفق نه منها چون بودی، گرنه از بیمش دل که خون شدی. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چند درآمد ره ببست. بحر لقمه گشته، لقمان گرو، وقت لقمان است، ای لقمه برو. از هوای لقمه این خار خار، از کف لقمان همه جوید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرس آن تمیز نیست. خاردان آن را که خرما دیده ای زان که بس نانکور و بس نادیده ای جان لقمان که گلستان خداست پای جانش خسته خار چراست اشترامت این وجود خار خار مصطفى زاده بر این اشتر سوار اشترا تنگ گل بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار راست تو سوی مغیلان از تو ریگ تا چه گلچینی زخار مرد ایگ ای بگشت از این طلب از کو به کو چند گویی کین گلستان کو و کو پیش از آن کین خار پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چون کنی آدمی کو می نگنجد در جهان در سر خار همه گردد نهان مصطفی آمد که سازد همدمه کلمینی یا همیرا کلمی ای همیرا اندر آتش نه تنال تازه تو شود این کوه لال این همیرا لفظ تانیس است و جان نام تانیسش نهند این تازیان لیک از تانیس جان را باگ نیست روح را با مرد و زن اشراک نیست از مؤنس و از مزکر برتر است این نه آن جان است که از خشک و تر است این نه آن جان است کف زاید زنان یا گهی باشد چونین گاهی چونان است و خش و عین خشی بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی چون تو شیرین از شکر باشی بود کان شکرگاه ز تو غایب شود چون شکر گردی ز تاثیر وفا پس شکر کی از شکر باشد جدا عاشق از خود چون غذا یابد رهیق عقل آنجا گم شود گم ای رفیق اقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته لانشد احریمه نیست او به قول و فعل یار ما بود چون به حکم حال آیی لا بود لا بود چون او نشد از هست نیست چون که آن لا نشد کرهن بسیست جان کمال است و ندای او کمال مصطفی گویان ارهنا یا بلال ای بلال افراز بانگ سلسلت زاندم کندر دمیدم در دلت. زاندم کادم از آن مدهوش گشت. حوش اهل آسمان بیهوش گشت. مصطفی بیخیش شد زان خوب سود. شد نمازش از شب تعریض فوت. سر از آن خواب مبارک برنداشت. تا نماز صابدم آمد بچاشت در شب تعریس پیش آن عروس یافت جان پاک ایشان دست بوس عشق و جان هر دو نهانند و ستیر گر عروسش خواندم ای مگیر از ملولی یار خاموش کردمی گر همو محلت بدادی یک دمی. لیک میگوید گوید بگوهین عیب نیست. جز تقاضای قضای غیب نیست. عیب باشد کونه بیند جز که عیب. عیب کی بیند روان پاک غیب. عیب شد نسبت به مخلوق جهول. نی به نسبت. با خداوند قبول کافر هم نسبت به خالق حکمت است چون به ما نسبت کنی کفر افت است وریکی یکی ایب با صد حیات بر مثال چوب باشد در نبات در ترازو هر دو را یکسان کشند، زانکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند پس بزرگانی نگفتند از گذاف جسم پاکان عین جان افتاد صاف گفتشان و نفسشان و نقششان جمله جان مطلق آمد بینشان جان دشمندارشان جسم است صرف چون زیاد از نرد او اسم است صرف آن به خاک اندر شد و کل خاک شد و این نمک اندر شد و کل پاک شد آن نمک کزوی محمد امله است زان حدیث با نمک او افسه است این نمک باقی است از میراث او با تو اندان وارسان او بجو پیش تو شسته تو را خود پیش کو پیش هستت جان پیشندیش کو گر تو خود را پیش و پس داری گمان بسته جسمی و محرومی ز جان زیر و بالا پیش و پس وصف تن است بیجهت آن ذات جان روشن است برگشا از نور پاک شه نظر تا نپنداری تو چون کوته نظر که همینی در غم و شادی و بس ای ادم کومر ادم را پیش و پس روز باران است می رو تا شب نه از این باران، از آن باران رب برنامه های مصنوی معنوی مولوی را می بکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کرده